دانش رویان عزیز کلام خدا چیزی که در طی مطالعه کتاب مقدس یاد گرفتیم این بود که دانش کتاب مقدسی و حتی حکمت کافی نیستند اگرچه سلیمان حکیم ترین مرد روی زمین بود در این حال بزرگترین شکست خورده روی زمین هم بود با این حال در سالهای پیری او آرزو داری که به مردان جوان و حتی به ما در این دوره هشدار بده که دنبال چیزهای بیهوده نریم و خدا بهترین راه ها رو داره. به نصیحت حکیمانی سلیمان که در کتاب جامعه به ما داده به دقت گوش کنید. دومین کتاب شعر که توسط سلیمان نوشته شده کتاب جامعه هست. از اونجایی که تمامی متن کتاب جامعه یک موعظه هست، نام این کتاب در زبان اصلی به معنی واعز انتخاب شده. سلیمان این نصیحت رو در سنین پیری خطاب به جوانان قوم اسرائیل موعظه کرده. یادتونه که در مزمور 127 سلیمان گفت که میشه نگران چیزهای بیهوده بود. میشه برای چیزهای بیهوده سخت کار کرد. این امکان هست که بیهوده بنا کرد و چیزهای غلط بنا کرد. این اساس موعظه سلیمان بود که در مزمور 127 آمده. این مزمور تفسیر زندگی سلیمان بود. به قول خودش اون نگران چیزهای غلطی بوده. او سخت برای چیزهای غلط کار کرده و چیزهای اشتباهی بنا کرده. کتاب جامعه نسخه مفصلتر مزمور 127 هست. در کتاب جامعه سلیمان به جوانان قوم اسرائیل میگه من سعی کردم که منظور و مفهوم زندگی رو در سه زمینه بفهمم. اولا مفهوم و معنی زندگی رو در ثروت مادی از نظر گذروندم من برای خودم ثروت زیادی هم داشتم و ثروتمندترین منترین مرد روی زمین شدم. هیچ کس تاکنون مانند سلیمان هدف از زندگی رو در زمینه ثروت مانند سلیمان بررسی نکرده. اما سلیمان به جوانان میگه من به وسیله ثروت و اموال خودم با موضوع عملی مرگم روبرو شدم. روزی ابلهی رو در بازار دیدم و از خودم پرسیدم چه بر سر آن احمق خواهد آمد؟ او خواهد مرد. چه برسر من خواهد آمد؟ من هم خواهم مرد. و چه کسی تمامی این ثروتی که اندوخته ام رو خرج خواهد کرد؟ شاید احمقی مثل او پسر سلیمان یک احمق بود سلیمان وقتی به این نتیجه رسید احتمالا پسرش رو در نظر داشت وقتی سلیمان تبدیل به ثروتمندترین مرد روی زمین شد ثروتش او را با موضوع انکارناپذیر مرگ خودش مواجه کرد او گفت ثروت نمیتونه هدف و مفهوم زندگی باشه زندگی باید چیزی فراتر از انباشتن ثروت باشه سلیمان میگه من از این نفرت دارم و مجبورم که حاصل تمام کار سختم رو رها کنم. کی میتونه بگه آیا پسر من حکیم خواهد بود یا احمق؟ با این حال تمامی ثروتم رو برای او به جا خواهم گذاشت. چه بتالتی؟ چقدر ناامید کننده است که فکر کنم تمامی ثروتم رو به احمقی واگذار خواهم کرد که منو ناامید کرده؟ سلیمان در ادامه به جوانان اسرائیل میگه وقتی فهمید هدف از زندگی اندوختن ثروت نبوده بعد از اون به دنبال حکمت رفته. باز هم سلیمان میتونه به جوانان اسرائیل بگه من حکیم ترین مرد روی زمین شدم. به هر حال تا کنون کسی مانند سلیمان نبوده که هدف از زندگی رو در مورد ثروت و رفتن به دنبال حکمت بررسی کرده باشه. سلیمان نتوانست هدف از زندگی رو در ثروت پیدا کنه چون به این نتیجه رسید که نخواهد توانست ثروتش رو به زندگی بعد از مرگ انتقال بده. او هدف از زندگی رو در حکمت هم پیدا نکرد چون او فهمید حکمت نمیتونه انسان رو به شادی برسونه. آیا تا حالا مجسمه شخص متفکر رو که توسط رودین ساخته شده دیدید؟ در این مجسمه شخص متفکر خوشحال نیست. او به نظر میرسه عبوس و افسرده هست. سلیمان منطق نتیجه گیریش رو توضیح میده. او میگه زیرا که در کسرت حکمت کسرت غم هست و هر که علم بیافزاید حوزن را میفساید. پس گرفتن درجه دکترا و فوق دکترا الزامن منتحی به شادی نمیشه. وقتی من در دانشکده بودم سوالی در ذهنم بود. من داشتم در درشته کتاب مقدس و روانشناسی تحصیل می کردم و از این بابت خیلی در فشار بودم. در تمام طول روز در کلاس ها روانشناسی و کتاب مقدس می خوندم و به عنوان دستیار تاریخ تمدن در طول تمام شب مطالعه می کردم. از یکی از استادانم سوالاتی کردم تا جایی که روزی به من نگاه کرد و گفت بذار بهت بگم که فکر میکنم باید چیکار کنی. ازت میخوام که به بیرون از شهر بری و وقتی چندتا تا گاو دیدی پیاده شو و به سمت یکی از اون گاوها برو و به صورت اون گاو نگاه کن و به چشمانش زل بزن. در تمام مدتی که به چشمان گاو خیره شدی احساس آرامش خواهی کرد. چون اون گاو راضی و قانه هست. حتی عکس اونها رو به عنوان عنوانسمبال رضایت روی بسته های شیر میزنن این نوع رضایت رو بهش رضایت گاوی میگن این نوع رضایت ناشی از جهل هست گاو نمیدونه که دنیا به لحاظ سیاسی و مذهبی تقسیم شده به کشورهای دموکراتیک یا حکومت تروریست و از هیچ کدوم از این سلاح های مخوف که میتونه نسل انسان را از بین ببره خبر نداره او هیچ کدوم از اینها رو نمیدونه بنابراین راضی هست برو بیرون و به چشمان گاو نگاه کن و آروم بگیر وقتی که به اون فکر کردم به این نتیجه رسیدم که یقیناً نیاز به استراحت دارم. اما دلم نمیخواد مثل یک گاو باشم و نمیخوام که رضایت من ناشی از جهلم باشه. من تمام اینها رو به این دلیل گفتم وقتی که به دنبال حکمت میرید و به جایی می رسید که خیلی میفهمید این واقعیت که شما زیاد میدونید به شما شادی نخواهد داد. دانش و حکمت رضایت به بار نمی سالها پیش من یک فرمانده نظامی ارشد رو دیدم که عضو ناتو بود و داشت حواسش را از دست می داد. چون او در مورد اتمی اطلاعات زیادی داشت. او منو متقاعد کرد که شادی چیزی نیست که از کس به دانش به دست بیاد. برداشت سلیمان از حکمت او رو به همون نتیجه گیری رسونده بود. در مقدمه کتاب مقدس گفتم که دانش تقوا نیست، اما کاربرد دانش تقوا است. حالا میخوام بگم که دانش حکمت نیست، اما به کارگیری درست دانش حکمته. سلیمان در دومین تلاشش برای پیدا کردن هدف زندگی به این نتیجه میرسه که رفتن به دنبال دانش هم بیهوده است. چون الزامن دانش انسان رو شاد نمی کنه. سلیمان به این نتیجه میرسه که حکمت انسان رو به حزن و دانش انسان رو به اندوه میرسونه. سلیمان به جوانان اسرائیل در این موعظه میگه او سومین مسیر رو در زمینه پیدا کردن هدف زندگی امتحان کرده. او سعی کرده خوشگذرانی و لذتها رو آزمایش کنه. منظورش چیه که گفته او رفته و از تمامی لذتهای دنیا بحرمند شده. او به جوانان اسرائیل میگه یادتون باشه که من ثروتمندترین و حکیمترین مرد روی زمین بودم. گاهی به کسانی نگاه میکنم که ثروتمندند و میبینم بعضی از چیزهایی که دارن به خاطر هست. گاهی با خودم فکر می کنم که اگه من هم به اندازه اونها پول داشتم بهشون نشون می دادم که با پول چی کار باید کرد. پیش خودم فکر کردم اونها باید خجالت بکشند که این همه پول دارند اما به نظر نمی که حتی از اون پول لذت ببرند. نمی دونند از چیزی که دارند چطور بهره من بشند. اما اگه من پول اونها رو داشتم آقلانه تر از اونها رفتار می کردم. من می دونستم که با اون همه پول باید چی کار کرد. سلیمان گفته که کلی پول داشته و از پولشم نهایت لذت رو برده. او گفته من چشمانم را از دیدن هیچ چیزی باز نداشتم و هرچه را میخواستم دیدم. عجب جمله ای. تا حالا هیچ کس مثل سلیمان دنبال لذت و ارزای نفس نرفته. به هر حال سلیمان به ما میگه در حالی که مشغول عیش و عشرت و خوشگذرانی بوده با سوالاتی مواجه شده. بهتره که چجوری این, کارو بکنم؟ این به چه دردی بکنم؟ و من به چه چیزی دست پیدا می کنم؟ من همیشه مجذوب این واقعیت شدم که هر نه فرزند کندی در 21 سال تولدشون یک میلیون دلار پول گرفتند که این پول ها از مالیات توسط واسطه ها برای اونها سرمایه گذاری شده اعضای اون خانواده مجبور نبودند کار کنند اونها مجبور نبودند یک روز هم در زندگیشون کار کنند با این حال هم جک و هم بابی کندی مسئولیت های گرفتن که به بهای زندگیشون تموم شد من معتقدم کسانی مثل برادران کنیدی میتونن به ما بگن چون اونها ثروت رو تجربه کردن نتونستن هدف از زندگی رو در ثروت پیدا کنن ما به دنیا نیومدیم که خوشگذرونی کنیم ما به دنیا نیومدیم که شب و روز به دنبال لذتها باشیم وقتی که سلیمان تمام زندگیش رو صرف خوشگذرانی کرد با تمام وجود خودش حس کرد که هنوز مشتاقه که هدف از زندگی رو پیدا کنه سلیمان میدونست که او به منظوری به این دنیا اومده و میدونست که مهمانی ها هدفی نبوده که خدا به خاطر اون او رو به دنیا آورده باشه این نتیجهگیری گیری سلیمان زمانی بود که برگشت و به منظور زندگیش از دیدگاه خوشگذرانی و هوسرانی نگاه کرد وقتی که سلیمان به پایان موعظه رسید نتیجهگیری او از بررسی هدف از زندگی بر مبنای زمینه‌های ثروت حکمت و خوشی بود نتیجه گیری سلیمان این بود، از خدا بترس و عوامر او را نگاه دار چون که تمامی تکلیف انسانین است. زیرا خدا هر عمل را با هر کار مخفی خواه نیکو و خواه بد باشد به محاکمه خواهد آورد. از خدا بترس یعنی به خدا ایمان داشته باش، عوامر او را نگاه دار یعنی از کلام خدا اطاعت کن. منطق نتیجه گیری سلیمان در زبان عبری به این صورت بیان شده به این دلیل خود را انسان کاملی بساز، به خدا ایمان داشته باش و از کلام خدا اطاعت کن و به این ترتیب یک انسان کامل خواهی شد که خدا تو را به همین منظور خلق کرده. این جایی که هدف از زندگی را میتونید پیدا کنید. این جایی که به عنوان یک انسان به کمال خواهید رسید. سلیمان گفته مرد ایمان و مطی جلال خدا هست. این پیغامی بود که سلیمان برای جوانان اسرائیل موعظه کرد. دلیل دیگری برای منطق نتیجهگیری سلیمان این بود که داوری خواهد بود. سلیمان حرفای زیادی در مورد بیعدالتی در کتاب جامعه برای گفتن داره. در پرتو این بی های بزرگ سلیمان به این نتیجه میرسه که بالاخره روزی داوری خواهد بود. وقتی ما به عنوان انسان به خدا ایمان میارییم و از کلامش اطاعت می‌کنیم، داوری آینده بخش مهمی از منطق سلیمان در مورد هدف از زندگی خواهد بود. این اساس موئزه بود که سلیمان برای جوانان اسرائیل کرد. در حالی که سلیمان برای جوانان اسرائیل موئزه می کرد، چیزهای بسیار شگفتانگیزی رو را با آنها در میان گذاشت وقتی کتاب جامعه رو می خونید، به نوعی یک سیستم دوسویه حقیقت را خواهید دید. زمانهایی هست که سلیمان در شک است و زمانهایی که او داره تحقیق می کنه. زمانهایی است که به نظر می سلیمان همه چیز رو به چالش میکشه و زمان‌هایی هست که به نظر میرسه بدون الهام خدا داره حرف میزنه. به این دلیل هست که کتاب جامعه کتاب مرده علاقه غیر ایمانداران و شکاکان هست. غیر ایمانداران و شکاکان همیشه کتاب جامعه رو دوست داشتن چون خدا به سلیمان اجازه میده تمامی شک‌هایی که داشته اظهار کنه. سلیمان مرد باهوشی بوده با این حال تردید داشته و شک میکرده. سلیمان بسیار بدبین بوده تا جایی که از حکمت کناره گرفته. متن‌های زیادی در کتاب جامعه هست که شکست سلیمان رو در حکمت به تصویر میکشه برحال وقتی سلیمان بررسی میکنه خدا به او مکاشفه میده او حقایق زیبایی رو به ما ارائه میده برخی از قطعات حکمتی که در کتاب جامعه می بینید خیلی بهتر از اون‌هایی هست که در کتاب امثال دیدید چون پیغام کتاب جامعه حقیقت را از دو جنبه بیان میکنه بعضی ها به این نتیجه رسیدند که این کتاب توسط چند نفر نوشته شده. به هر حال اگر واقعا بفهمید که چه چیزی در کتاب جامعه در جریانه شاید فکر کنید که بخشی از این کتاب شبیه مباحثاتی است که بین بلدد و سوفر و الیفاس در کتاب ایوب دیدیم. وقتی اون تسلی دهندگان ایوب بحثشون رو به پایان رسوندن، خدا گفت که حرفای اونها حقیقت نداره. به هر حال بحث‌های اونها بخشی از کتاب مقدس است. همه ی کتاب مقدس الهام شده از طرف خداست اما جملاتی در اون هست که حقیقت ندارن. وقتی کتاب مقدس حرفای شریر رو نقل میکنه چیزی که شریج میگه حقیقت نداره اما چیزی که شریر گفته توی کتاب مقدس وجود داره مطالب الهامی زیادی در کتاب جامعه هستن اما حقیقت ندارن مخصوصا زمانی که سلیمان بدبین شده وقتی که در تردید هست و به دنبال هدف از زندگی میگرده جوابهای الهامی خدا که به جستجوی سلیمان برای هدف زندگی میده زیباترین حقایقی هستند که کتاب مقدس به ما عرضه میکنه. اینجا متن زیبایی در باب سه کتاب جامعه هست. برای هر چیز زمانی هست و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است. وقتی برای ولادت، وقتی برای موت، وقتی برای قرس نمودن و وقتی برای کندن مغروس، وقتی برای قتل و وقتی برای شفا. وقتی برای منهدم ساختن و وقتی برای بنا نمودن این متن بسیار زیبا به ما میگه که خدا برای هر چیز زمانی داره این متن شبیه عبارت کوتاهی در مزمور یک هست که میگه میوه خود را در موسمش میدهد یا خدا در زندگی انسان در زمان خدا کار میکنه این متن در کتاب جامعه این رو هم به ما میگه که یا این یا اون نیست هر دو هست من فکر میکنم این چیزی که سلیمان در باب سه آیات یک تا هشت به ما میگه. خدا ابدیت رو در قلب انسان نهاده. این مطلب زیبایی هست. به این دلیلی که مردم سوالاتی مثل عیوب میپرسن. اگر انسان بمیرد آیا باز زندگی خواهد کرد؟ سلیمان کمی بدبین هست وقتی مینویسه پس برگشته به دیگر را زیرا آسمان ملاحظه نمودم. یکی هست که سانی ندارد و او را پسری یا برادری نیست مشقتش را انتحانی و چشمش نیز از دولت سیر نمی شود و میگوید از برای که زحمت کشیده جان خود را از نیکویی محروم سازم. این نیز به و مشقت سخت است. این نظر جالبی هست. سلیمان کسی را به تصویر کشیده که بچه هاش دارن روشت اما او داره روزانه 18 تا 20 ساعت کار میکنه و پول بیشتری در میاره در حالی که نه خودش و نه خانوادهش به پول بیشتری نیاز ندارد اگر شما از چنین شخصی در مورد برنامه‌اش بپرسید، او میگه من باید خانوادم رو تأمین کنم. بالاخره من باید خانوادم رو حمایت کنم. در حالی که با تمام وجودش میدونه که کار کردن او تنها به دلیل حمایت و پشتیبانی خانواده‌اش نیست. این چنین افرادی به دلایل زیادی کار میکنند. آشکاره که وقتی کسی کار میکنه و هیچ کس رو نداره که به خاطر او کار بکنه، ولی با این حال طوری کار میکنه که گویی خانوادهش گرسنه هستند. اون وقت متوجه میشیم که نیروهای دیگری او را به سمت اعتیاد به کار میکشونند. توضیحی که این گونه افراد برای رفتارشون میدن هیچ گونه مبنای واقعی نداره. در پیدایش با به سه وقتی خدا از آدم پرسید کجا هستی آدم گفت من مخفی شدم. وقتی من پیدایش سه رو بررسی میکردم گفتم جوابی که آدم به خدا داد شرح طبیعت انسانی بود. همونطور که بود و همونطور که هست. انسان پشت بسیاری از چیزها مخفی میشه. انسانها زیاد میخورند، زیاد میخوابند، زیاد بازی میکنند، زیاد کار میکنند. کار کردن زیاد میتونه نوعی پنهان شدن از خدا باشه. من گمون میکنم این چیزیه که سلیمان در اینجا بهش اشاره میکنه. در باب چهار سلیمان دیدگاه زیبایی از ازدواج به ما ارائه میده. او مینویسه دو از یک بهترند چون که ایشان را از مشقتشان اجرت نیکو میباشد. زیرا اگر بیفتند یکی از آنها رفیق خود را خواهد برخیزانید لکن وای بر آن یکی که چون بیفتد دیگری نباشد که او را برخیزاند و اگر دو نفر نیز بخوابند گرم خواهند شد اما یک نفر چگونه گرم شود و اگر کسی بر یکی از ایشان حمله آورد هر دو با هم مقاومت خواهند نمود و ریسمان سلا به زودی گسیخته نمی شود سلیمان با کلمه ریسمان سلا تشبیه زیبایی از ازدواج به ما میده سازندگان تناب به ما میگن که ریسمان هایی که از سرشت تشکیل شدهاند ریسمان هایی بسیار محکم هستند. واضحه که اینجا نظر سلیمان رابطه در ازدواج هست. چون وقتی خدا ازدواج رو تحریزی کرد نظر خدا رابطه متفاوت از رابطه حیوانات بود چون وقتی حیوانات با هم رابطه برقرار میکنند و تولید مثل میکنند امکان نداره که اونها بتونند در روح و فکر هم با هم یکی بشن. وقتی خدا ازدواج رو، طرح ریزی کرد، نظر خدا این بود که اونها در روح یکی بشن. رابطه روحانی اولین رشته از اون ریسمان سلاح است. بعد خدا هم فکر بودن رو در رابطه ازدواج ترک کرد تا اینکه اونها با هم صحبت کنند و بندهای عاطفی و اقلانی با هم داشته باشند و من معتقدم که به عنوان رشته سوم خدا رابطه و اتحاد جسمانی اونها رو که در اعماغ روح و فکر اونها قرار داره ترک کرد. شما میتونید اون ریسمان سلا رو به این ترتیب در ازدواجتون بکار بگیرید. ازدواج شما میتونه یک ریسمان سلا باشه که شما یک گره روحانی در اون دارید، یک گره اقلانی و یک گره جسمانی که تجلی دو گره روحانی و اقلانی هست. وقتی که روابط جسمانی به خاطر بیماری و پیری از بین میره، هنوز رابطه روحانی و اقلانیتون رو دارید که مهمترین و با بادوامترین ازدواج های مشکل در بسیاری از ازدواج امروزی این هست که اونها فقط رابطه جسمانی هستند. وقتی چیزی مثل بیماری پیش میاد و یا جذابیت جسمانی از بین میره، دیگه هیچ عامل قدرتمندی نیست که این دو شخص رو کنار هم دیگه نگه داره. نقشه خدا اینه که ما در ازدواج هامون همدلی داشته باشیم و همینطور رابطه جسمانی داشته باشیم و به اون وسیله بعد روابط روحانی و اقلانی رو نشون بدیم. مشاورین ازدواج میگند که بعد جسمانی یک ازدواج خوب فقط ده درصد از اون رابطه هست. وقتی که مشکلاتی در رابطه جسمانی در ازدواج هست، به هر حال رابطه جسمانی میتونه 90 درصد مشکل باشه. روابط جنسی طرایحی شده که به وسیله اون همدلی و گفتگو در ازدواج ابراز بشه. یک تناب سلا راحتی پاره نمیشه. به این ترتیب سلیمان نظر عمیقی در ازدواج ابراز کرده. سلیمان در ادامه تعلیم بزرگی در باب هفت این کتاب به ما میده. باب هفت مانند مینیاتوری از کتاب عیوب است. رفتن به خانه ماتم از رفتن به خانه زیافت بهتر است زیرا که این آخرت همه مردمان است و زندگان این را در دل خود می‌نهند. حزن از خنده بهتر است زیرا که از غمگینی صورت دل اصلاح می‌شود. دل حکیمان در خانه ماتم است و دل احمقان در خانه شادمانی. شنیدن اطاب حکیمان بهتر است از شنیدن سرود احمقان در روز سعادتمندی شادمان باش و در روز شقاوت تعمل نما زیرا خدا این را به ازای آن قرار داد که انسان هیچ چیز را که بعد از او خواهد شد دریافت نتواند کرد در این مد سلیمان چیزی رو به ما میگه که همه شبانها ها میدونن زمانی هست که یک شبان باید توجه حضار رو جلب کنه مردم واقعا در مراسم تدفین خیلی خوب به شبان گوش می کنن. اغلب در مراسم تدفین سیستم ارزشی جماعت در راستای سیستم ارزشی خدا هست. در مراسم تدفین مردم به ابدیت فکر می کنند. در مراسم تدفین مردم به واقعیت بعد ابدی فکر می کنند و می فهمند که بعد ابدی بسیار مهمتر از بعد زندگی هست. زندگی قابل اعتماد نیست اما مرگ واقعیتی مسلم است مردم در مراسم تدفین به این چیزها خیلی فکر میکنند. چون خودشون رو با تجربیات شخص متوفا مقایسه میکنند میفهمند که روزی اونها هم خواهند مرد. هیچ جای شک و شبهی در اینجا نیست. تنها فرقش اینه که کجا، کی و چطور و برای چه. اما همه ما خواهیم مرد. خدا در صدت هست که سیستم ارزشی ما رو با های خودش همسو کنه. به این دلیلی که خدا توسط سلیمان میگه رفتن به خانه ماتم از رفتن به خانه زیافت بهتره شما در مراسم تدفین رشد روحانی بیشتری میکنید تا در یک مهمانی بنابراین شخص حکیم بیشتر به مرگ فکر میکنه منظور نیست که مریض هست و یا آرزوی مرگ داره در مراسم تدفین مرد حکیم بیشتر از این حقیقت آگاه میشه و مجبور میشه این واقعیت رو بپذیره که تا ابد زندگی نخواهد کرد پس شخص حکیم برای ابدیت آماده میشه. در این باب باشکو ما این نصیحت خوب را هم می‌بینیم مگو چرا روزهای قدیم از این زمان بهتر بود زیرا که در این خصوص از روی حکمت سوال نمی‌کنی به نظر میرسه که ما بیشتر مستعد دلتنگی هستیم که منجر به خیال بافی میشه وقتی ما به گذشته نگاه میکنیم و به والدین متوفامون نگاه میکنیم میل داریم که نکات مثبت اونها را به یاد بیاریم حتی تا جایی که اونها رو بهتر از چیزی که بودن تصور می کنیم. ما تقصیرات اونها رو به یاد نمیاریم خیلی در مورد گذشته شخصیمون خیال پردازی می کنیم ما ما به اون روزهای خوش گذشته برمیگردیم گرچه میدونیم که اگر واقع بینانه به گذشته نگاه کنیم می بینیم که اون روزهای خوش گذشته همیشه هم واقعا روزهای خوشی نبودن شاید به این خاطر که ما به گذشته با دلتنگی و خیال پردازی نگاه میکنیم چونکه نگاه واقع گرایانه به گذشته گاهی دردناکه پولس رسول در سومین باب از رساله به فیلیپیان به ما میگه زمانهایی هست که عاقلانه اینه که این اصول رو به کار بگیریم یعنی چیزهایی که در گذشته اتفاق افتادن فراموش کنیم زمانهایی هست که همه ما باید چیزهایی که در گذشته بوده فراموش کنیم سلیمان در این باب به ما میگه خیلی خوب و خیلی حکیم نباشید حالا اون از اون جمله نصیحت ها نیست که ما بخوایم از یک رهبر روحانی بشنویم و بپذیریم. من فکر میکنم سلیمان به ما نصیحت میکنه که مثل فریسی ها نباشیم. اگر به جایی رسیدید که فکر کردید پارسا هستید، احتمالا دیگران رو به دیده تحقیر خواهید نگریست. سلیمان نمیخواد ما مثل اون فریسی باشیم که گفت خدایا شکرت میکنم که من مثل اون مرد نیستم. اگر شما این تصور رو به بچه هاتون الغا کنید که پارسا هستید، الگوی غیر واقعی برای اونها خواهید شد. چون این الگو دست نیافتنی هست، پس طوری وانمود نکنید که شما بیش از حد پارسا هستید. چون حتی یک نفر هم در روی زمین نیست که همیشه خوب باشه و هیچ گناهی نداشته باشه. پس چرا به دیگران مخصوصا به فرزندانتون وانمود می کنید که بیش از اونی که هستید پارسایی متن بسیار زیبایی در باب نوح است اونجایی که سلیمان می‌نویسه باز بر روی زمین نظر کردم و دیدم که چابکترین مرد همیشه برنده مسابقه نیست یا قویترین مرد برنده نبرد نیست و دیدم که مردان حکیم اغلب فقیرند و دیدم که مردان ماهر همیشه لزوما معروف نیستن بلکه همه چیز اتفاقی است که با قرار گرفتن در جای درست و در زمان درست به دست می‌آید چون من به حاکمیت و مشیت الهی معتقدم باور نمی کنم که همه چیز اتفاقی باشه من فکر می کنم که سلیمان نظر حکیمانه ای رو داده که کلمات کتاب مقدسی فیض و یا عطیه رو به تفسیر می کشه انسانگرایی می میگه من هستم منتهی به می میشه باید هر کاری که برای انجامش لازمه بکنیم کتاب مقدس مکررن می میگه نه او هست که منتهی میشه به اینکه تو بتوانی تو میتوانی چون خدا هست و چون خدا میتونه و خدا در تو و با تو هست به این دلیل که تو میتونی در کتاب مقدس این مفهوم فیض خدا توصیف شده از اونجایی که توانایی های شخصی و موفقیت های شخصی مهم نیستن بنابراین میتونیم بگیم که ترین شخص همیشه برنده مسابقه نمیشه و قوی ترین شخص همیشه برنده نبرد نمیشه در باب نه سلیمان همینطور شهری رو توصیف میکنه که با نصیحت مرد حکیم نجات یافته شهری کوچک بود که مردان در آن قلیل بودند و پادشاهی بزرگ بر آن آمده آن را محاصره نمود و سنگرهای عظیم برپا کرد در آن شهر مردی فقیر حکیم یافت شد که شهر را به حکمت خود رهاند اما کسی آن مرد فقیر را به یاد نیاورد سلیمان فکر میکنه که این یک بی‌عدالتی وحشتناکه که این مرد هرگز به یاد آورده نشد و به او پاداشی ندادن حقیقت عمیقی که اینجا به چشم میخوره چنین چیزی هست انجام شدن کار مهمتر است از تمجید شدن به خاطر کار. یک شبان خداشناس در انگلستان می گفت که در زندگی و خدمتش بحرانی داشته وقتی کسی از او میپرسه بحران چیه او میگه بذارید اینطور بگم قبل از بحران من کسی بودم که میخواستم ببینم مسیح توسط من به لندن میاد بعد از بحران من کسی شدم که فقط می‌خواستم مسیح به انگلستان بیاد. تفاوت زیادی بین این دو هست. من فکر می کنم این همون حقیقتی هست که سلیمان در این متن کوچک کتاب مقدس بر اون متمرکز شده. در باب ده سلیمان می نویسه اگر تبر کند باشد و دمش را تیز نکنن باید قوت زیاده به کار آورد. اما حکمت به جهت کامیابی مهم است. بعضی ها توی زندگی با تبر کند می‌برند. این آیه منو یاد عبارتی از یک سرود میندازه که میگه چه دوستی در عیسی دارم سرود میگه چه دردهای بیهوده‌ای میکشیم فقط به خاطر اینکه نمیتونیم همه چیز رو در دعا به حضور خدا ببریم یکی از راهایی که میتونیم تبرمون رو تیز کنیم گشتن به دنبال خدا و حکمت او هست ما وقت نمیذاریم که تبرمون رو تیز کنیم تربیت درست در سنین اولیه زندگی هم کاربرد زیبایی از این ستاره است سلیمان میگه حادشاه رو در فکر خود نفرین نکن و دولتمند رو در اتاق خوابگاه خیش لعنت ننما زیرا که مرق هوا آواز تو را خواهد برد و بالدار امر را شایه خواهد کرد. بعضی ها آیه بیست باب ده رو اینطوری تفسیر میکنن شما ارباب حرفی هستید که زده نشده و حرفی که زده شد ارباب شماست. بنابراین هرگز توی زندگی اسیر کلماتی نشید که آرزو کنید کاش این حرف رو نمی زدید. این نظریه زیبا در باب یازده هست که میگه نان خود را بر روی آبها بینداز زیرا که بعد از روزهای بسیار آن را خواهی یافت آنکه به باد نگاه میکند نخواهد کشت و آنکه به عبرها نظر نماید نخواهد دروید چنانکه تو نمیدانی که راه باد چیست یا چگونه استخوان در رحم زن حامل بسته میشود همچنین عمل خدا را که سانه کللس است نمیفهمی بامدادان با تخم خود را بکار و شامگاهان دست خود را باز مدار، زیرا تو نمیدانی کدام یک از آنها این یا آن کامیاب خواهد شد یا هر دوی آنها مثل هم نیکو خواهد گشت. این تعلیم بسیار زیبایی برای خادمین خداوند هست که با جوانان کار میکنند. اگر شما معلم جوانان و یا معلم کانون شادی هستید و به جوانها درس میدید، اگر شبان جوانان هستید و مرتبا با جوانان سر و کار دارید یا اگر در خانه خود جوانی دارید درک این حقیقت بسیار اهمیت داره وقتی شما با جوانان کار میکنید ثمره اش رو بعدن خواهید دید من فکر میکنم این مخصوصا برای گروه نوجوانان صدق میکنه سالهای نوجوانی سالهای سختی برای جوانان و کسانی هست که با اونها کار میکنن آیا تا حالا این رو ملاحظه کردید اگه واقعا به اونها کمک میکنید اونها هرگز نشون نمیدن که شما دارید به اونها کمک میکنید این مثل یک توت میمونه نوا تصمیم میگیرند که به جوک شما نخندند و طوری وانمود خواهند کرد که را شما میگید نمیشنوند این به این معنی نیست که شما به اونها کمک نمیکنید چیزی که اینجا گفته شده مخصوصا در مورد معلم جوانان صدق میکنه نان خود را بر روی آبها ها زیرا که بعد از روزهای بسیار آن را خواهی یافت پس با ایمان بذرتون رو بکارید و خدا وقتی اراده کنه آن را خواهد روانی آیا تا حالا یک جوان غیرقابل تحمل را دیدید که ده سال بعد او رو در یک خدمت و یا در یک سمینار دوباره ببینید؟ شاید به خاطر بیارید که اون موقع در تعلیم اونها با مشکل مواجه بودید. وقتی میشنوید که اونها وارد عرصه خدمت شدند، نمیتونید باور کنید. خب شما با رو بپاشید و روح القدس اونها رو ریشه خواهد کرد. با این حال شاید نوجوانانی رو ببینیم که خیلی بهتر از نوجوانی ما هستند. و به این دلیلی که من هرگز نمیتونم از تعلیم نوجوانان دست بکشم من مطمئنم کسانی که در کانون شادی به من درس میدادند وقتی من بچه بودم این عتیه ایمان رو داشتند که بذرهای ایمان رو در زندگی من بکارن وقتی من به شهر زادگاه هم میرم حتی به مردم نمیگم که یک خادم هستم چون نمیخوام حتی نیم ساعت وقت صرف کنم و اونها رو متقاعد کنم که من شوخی نمیکنم اونها هنوز همینو باور نمیکنند. کتاب جامعه با این متن زیبا به پایان میرسه، پس آفریننده خود را در روزهای جوانیت به یاد آور قبل از آن روزهای بلا برسد و سالها برسد که ببینی مرا از اینها خوشی نیست. این پیام اساسی و واقعی هست که سلیمان برای جوانان معهزه میکنه. سلیمان میگه جوان بودن چیز فوق العاده ایه. از هر دقیقه اون لذت ببرید. اما بعد از اون میگه آفریننده خودتون را هم در روزهای جوانی به یاد بیارید بعد از اون اشعار زیبایی داریم این اشعار الهام شده شرحی از پیرمردیه که تمام بدنش فرسوده شده سلیمان میگه قبل از اینکه روزهای بلا برسند و روزی که محافظان خانه بلرزند آفریننده خود را به یاد بیار. این میتونه مربوط به دستها و پاها باشه و در ادامه میگه و صاحبان قوت خیشتن را خم نمایند و دست از کنندگان چون کم بازیستند این میتونه مربوط به دندان ها باشه و آنهایی که از پنجره ها می تاریک شوند. این میتونه مربوط به چشم ها باشه و درها در کوچه ها بسته شود و آواز آسیا پست گردد این مربوط به گوش هاست و درخت بادام شکوفا آورد و این هم موهای سفید شده و بعد از اون بلافاصل سلیمان به مرگ اشاره میکنه قبل از اون که مفتول نقره گسیخته شود و کاسه طلا شکسته گردد و صبون نزد چشم خرد شود ببینید خود سلیمان وقتی داشتیم موعزه رو میکرد بسیار پیر بود و مرگش نزدیک بود این میتونه نتیجه گیری احساسی برای اون موعزه باشه قبل از اینکه مفتول نقره گسیخته بشه و کاسه طلا شکسته بشه و سبو نزد چشم خرد بشه و چرخ بر چاه منکسر بشه و خاک به زمین برگرده به طوری که بود و روح نزد خدا که آن را بخشیده بود رجوع کنه چه مععزه شگفتنگیزی از یک پادشاه پیر خطاب به جوانان اسرائی سلیمان این پادشاه پیر رو در نظر بگیرید ثروتمندترین و حکیمترین مرد جهان بود بیش از همه خوشگذرانی کرده بود مردی بود که هفتصد زن و 300 سی زن سیغه داشت او رو در نظر بگیرید که نشسته و تجربیات خودش رو برای جوانان اسرائیل موعظه میکنه. به اونها میگه اگرچه تجربیات تنها معلم نیستند، اما معلم قانع کننده ای هستند. از تجربیات من بهره بگیرید و آفریننده خود را در جوانی به یاد بیاورید. من به دنبال هدف زندگی در ثروت، حکمت و در لذات زندگی گشتم و نیافتم. بذارید بگم که کجا میتونید هدف و مفهوم زندگی رو پیدا کنید. از خدا بترسید و فرامین او را نگه دارید چون این شما را انسان کاملی می وقتی جوان هستید، در تمام طول زندگی از خدا بترسید و فرامین او را به جا بیارید. بدن زنده برای خدا قربانی کنید، نه یک بدن مرده. دوستان، آیا مجبور بودین که چیزها را به طریق سخت یاد بگیرید؟ تجربیات می تونن معلم گیرانی باشن. سلیمان و کلام خدا اصول کتاب مقدسی رو به ما یاد میدن که ما رو به راه های درست هدایت خواهد کرد. به راه های برکت. یادتونه که سلیمان گفت که ابتدای حکمت احترام به خدا و پرستش خداست. دائما اینه که این درس ها به شما کمک کنه که در معرفت و حکمت رشد کنید و روح قدوس خدا شما رو به راه های برکت هدایت کنه. تا برنامه بعدی امیدواریم لذت پیروی از اون رو تجربه کنید.